خوشحال من این جایگاه قرار یافتم و میتونم ایندا خدمت شما باشم بعد از اینکه در مورد در دو جلسه آینده باهاتون صحبت کنم رهای ارتفاع از انسان مصطره شوی دنیال احوال و از سیگار تابعیت برام خدمت شما ارائه تام تا علی و امرداد دیروز مثلا از استان آقای مهندس کل نهایی از سیگار رو دریافت مکان یکم خودشون خانوادهشون هم سفرشون راهنمای محرمشون آل بافرشید و بنیان کنگره و تمام اعضای کنگره شخصل آخر نمایندگی زاد تبریک تبدیص میکنن با امیدوارم شاهد روانهایی بیشتر که شمون باشیم که پسیم این روند به دوررش رو که داشتیم ادامه بدیم و در ادامه به آموزش های کنگره و به چیزهایی که فرا گرفتیم عمل بکنیم تا شاهد بالا رفتن دانایی و آگاهی خودمان باشیم. خیلی خوشحالم و خوشحال خودم با ادراز می اما در مورد دستور جلسه امروز بانوان اولین دستور جلسه سال کانگریشن. اساس شک درمان درمان PST در, در کانگریشن اصلا در اساس دستور صورتمسئله مسئله احتیاط شک و وگرنه در طول سالیان گذشته از زمان خلقت انسان هر وقت هر بیماری بوده انسان به دنبال درمان اون بود یعنی از زمانی که درد بودت اومده دنبال درمانش هم بود ولی این درمان به چه شکل انجام بشه و به چه نسیجه ای برسه اونه که مونه از زمانی که مواد مخصص به مورد سو استفاده قرار گفت یعنی از دست به حاضر از دست به که باعث درمان و پیشرفت مردم باشه به دست که واقعا تر مصرف اون رو دونست قرار گرفته. از اون زمان که تاییان در صدف در اومدن که اون درد رو درمان میکن. از اون زمان تا الانی که مادرن هستیم روش های خیلی زیادی برای درمان مادوق ارائه شد و خیلی از راهکارها امتحان شد خیلی از ماهها شاید اون روش ها را رو کرده باشیم. یا خیلی از اطرافییان اون روش ها رو امتحان کرده باشن. تمام میدونیم هر چه تو اتاقات تمزودایی هر چه شنداق درمانی اول س درمانی دوهانیاییرش نمیدونم نمی‌دونم، های متاف میچ هر که به یه شکلی به هر شکلی که فکر می درستره درره چند تا تا درد و درمان. بهقول آقا ما است اگر توی اینترنت تش بکنیم شاید هزارها و ها مقاله، مقاله علمی و دانشگاهی در مورد مواد مخدر و درمان مواد مخدر پیدا واو. ولی کدوم که از اون‌ها مونغر به درمان شده؟ چه ها و الگوی می‌تونن ما درآوردن؟ در سطح شهر، در سطح جامعه، در سطح کشور، و حتی خارج از کشور، خیلی هم مدعی درمان مواد مخدر هستند. هر کس به طریق، یک بار بورس‌های جهادی به ادعای خودشون دید. یکی با نگهدارانده هایی مثل متاظران برد هر کس به هر روشی که فکر میکنه درسته حالا چه ممکنه این روش به خاطر سوچوری باشه و ممکنه هم به خاطر انسانیت و درمان انسان ها باشه ولی نتیجه اون چی شده؟ ما به کنگره کنگریشت در کجای دنیا در کجای مندجت میتونیم نمونه ها و الگوهایی رو نشون بدیم که به درمان کاملی سیدن و چرا کنگریش یه مسئله از توی عوام هست که میگه معما روحلگشت آسان شود معمای درمان احیاط با کشف صورت مسئله احیاط چ که این موضوع با سیستم ای و چیزی که کانگیرره شخص اون رو ارائه داد یه ارتباط تنگ داد سیستم ایک چیه؟ سیستم ایک، اون قدرت در اونریت بر اونرییت ترتر ترانس، نمیتونم تمام چیزهایی که توی بل ما به صورت هرمون تولید میشن و هر کدوم که نقشی رو ایفا میکنه توی بدنمون بر اثر سو مصرف مواد مخدر، اونا از توادل میافتند. وقتی که ما این توادل رو از گنگ بردیم با مصرف مواد مخدر در دراز مدت اون احتیاط شکل میگید که تمام دنیا احتیاط روی بیماری پیش روونده و لاحلاج میدن کنگریشت با ما کردن تهوری ایکس و صورت مثالی و کشف صورت مسئلی ازیاد اومد یه راه تازه را نشون داد اومد گفت کسی که مطقب کنندی مواد مخدر هست اومده و این روندی رو که باعث تخریب، تمام این سیستم شده در طول مدت زمان تقیه کرده حالا ما این سیستم رو برعکس میکنیم یعنی همون جوری که داده شده به همون نسبت میانکمش میکنیم در یه زمان و بازی زمانی مشخص همون نوشت برای درمان جست و روان 90 درصد جت و روان, ماه, روان ماه ما روانداد. توی این 10 ماه ما این و روان رو تا 90 درصد درمان می جهان بینی ما در طول این مدت تا حدودی درمان میشه ولی بسته به افرادش اون دست به خوددا و ممکن خیلی بیشتر اون طور بشه. ولی ما میانیم این تا مععلم فر و روان و جهان بینی توی کنگره شهر قرارشه دیگه است و با آموزش های پایگیران شد ببین ما همش تو مقوله جسم درمان نمیشه که ما گیرش اون روانانداز جهان بینی ما که اصل موضوع و حلقه مفقوده در واقع درمان احتياج اون جهان بینی بوده توی اون گیرش اخت میاد در تعادل میره حالا ما از با پایگزاری این موضوع اومدن و الان ما ارغوهاری داریم که سالهای سال درمان مواد اون خط و هیچ برگشت را همترین برگشت رو در تمام کنجیو ها کنگره ش داره، علتش می که صورت مفرش مشبت شدیم وقتی ما میخوایم یه بنایی رو بذاریم تا تمام جزئیات اون موضوع ندونیم واقعا نمیتونیم هم ساختتر رو شکل بدیم حالا اما از اینکه ما بخوایم یه مود ای بسازیم یه خونه ای حتی بسازیم اگر ما نقشه اول نقشه کار نداشته باشیم، به جزیات هم لوان مورد نیاز اون اعتراط آاضایی نداشته باشیم، از ساختن اون موضوع شاید بسازیم ولی به شکل کامل نمیتونه بسازیم و اگر هم بسازیم واقعا به نتیجه لازم نمیرسه کنگیره از کاری که کرد میگو اومد جوزیات احتیاط و در اومد گفت ما چی را خراب کردیم و چی رو باید درست بکنیم بله مقولیه جست اگه در نظر بگیر کسی که در ترکیه صعود آزاد میکن شاید بعد از دو هفته یک ما تمام اون صور در واقع عوای که نشان میده یه شفت در درواقع ترک کرده رو کم کم از بین برهش حالا ممکنه کسی سیم کشی دست و پا داشته باشه کم کابی داشته باشه دییرون لی داشته باشه عرق بکنه تمام این چیزایی که صورت آشکار هست بله بعد از یک هفته یا دو هفته ممکنه کم بشه از بین داره ولی بله ما چیره تخرریب کردیم آیا فقط منظور نظرمون از بین بودن علاقه نامی ایتیاد هست؟ بله اگر میخوایم در واقعه اون نشانه ها رو از بین برای بله محفظ میشیم با شروت ملتاجون، با قرص، با شروت دریادی ولی اون چیزی به که تحلیق کردن اون سیستمی رو که به انهدام کشوندیم خیلی بیشتر از اینها طور میکشه و مستظم یه طریق آمودش هست مستظم یه بازی زمانی خاص هست و باید حواसत به سمت اخلاق بهتر باشه ما میان توی کنگره شت تمام اینها تا میلیارد می و کاروردی میکنن و اینه که یه مسافر کنگره شخصی که به درمان رسید بازگشتش تقریبا غیر ممکن میشه مگر در موارد خاص و الا اگر نفس درمانی رو در نظر بگیریم، کنگره‌شاستی که از جوهره‌ای که واقعاً تو دین که درمان رو دیدن. هیچ کونه می و تمایل نداره، بخاطر اینکه سیستم داخلی بدنشون، درمان شده جهان بینی و روانشون به تعادل برسیره. به تعادل رسوندن جسم، روان و جهان هنر کنگره‌شاستیه که الان همه ما داریم ازش استفاده می‌کنیم و امیدوارم که همه داریم در این راه موفق باشند. ممنونم از توجه شما.